جلسه پنج و پنج قواهد فقه و ای اول خرداد 1401 محصه آموزشالیه ممرزا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا اب القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیه الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحثمون رو آغاز میکنیم ما در بحث قبل بحثی از قاعده تقدیم مسلحت و نفس علا مسلحت العقل رو مد نظر قرار دادیم و دو سه محور رو عرض کردیم تامین مسلحت نفس، رعایت مسلحت نفس سیانت و حفاظت از مساله نفس مسلحت ارتقاء نفس اینا رو در مفهومش گفتیم مسلحت عقل رو هم در مقابل مد نظر قرار دادیم که طبیعتا در بحث عقل می توان خلیصه عدم های مختلف رو در نظر گرفت وضعیت‌های های به مسلحت عقل ما در نظر گرفتیم که می توانیم عدم برخورداری از عقل یه معقوله برخورداری از عقل گفتیم تضعیف عقل ازاله و زوال خلاصه و از بین بردن عقل رو مطرح کردیم این بناه مصادیق و همینطور ارتقای عقل و دانش و معرفت رو خلاصه ما لحاظ کردیم در واقع این چند مورد رو ما میتوانستیم در نظر بگیریم و این خودش یه دکتر مهمه که ما بین این ها کنیم که ما یه جایی عقلی میتوانه صحبت از عدم برخورداری از عقل بحث کنیم که خب خارج از بحث یه جایی بحث از برخورداری هست خب بعد نوبت میرسه به این که ما تضعیف بکنیم عقل رو بدونی که از بین بره یک جایی مکنه تضاهم خلاصه به اینجا بینجامه که عقل رو تضعیف کنه یه جایی هم میتوانه به چی برگرده خلاصه ازالو از بین بردن عقل یه جاهایی هم میتوانه خلاصه ارتقای عقلم داشته باشه حالا در یه جوری تکمله یه چی حسابش بکنیم برخورداری و ارتقای عقل اما تضعیف و از بین بردن مد نظر بحث ما خب اینها رو باید لحاظ کرد و در نظر داشته باشیم اما معمولا کدام مد نظر سیانت از عقل طبیعتا اینجا مد نظر هست و در بحث ما محور بحث بود خب این تأکیدی بر بحث خلاصه مفاهیمی که مد نظر ما بود رعایت عقل و سیانت عقل و اینها مد نظر بود محتوای قاعده را هم گفتیم که خلاصه چیز تقدیم مصلحت نفس بر مصلحت عقل نفس محترمه داریم از یه طرف عقل داریم خب اینها چه موارد داریم پیش پرسا رو گفتیم محدودیت مقوله نفس محدودیت‌های مدیده تضامه های مربوط نقص و عقل در این قاعده یعنی به رقمی که اون شقوقات مختلف رو ما گفتیم خلاصه باید ببینیم کدام مد نظره طبیعتا همه خلاص لزومن همه موارد مزبوری که ما گفتیم در بحث از هزا هم جای طرح ندارند بلکه معمولا اون سیانت از عقل که مد نظر و ما بینیم پس نفس از یه طرف عقلم یه طرف بچه ترجیح رو هم کردیم که میقداری ما برگرداندیم خلاصه به ذات و ماهیت نفس و عقل و جایگاه اینها در واقع از بین رفتن انسان رو در نظر گرفتیم و خلاصه یه طرف رو گفتیم که به از بین رفتن عقل میشه اما تضعیف یا تعطیل موقتی عقل یا حتی زوالش موجب از بین رفتن نمیشه خب این یه مقدار تو مسائل مسادقش هم در امور خصوصی پررنگ‌تره خب این موارد رو ما داریم قاعده دیگه که بخوایم مطرح کنیم تقدیم مصلحت نفس بر مصلحت ارز یا نسب این رو عرض کنیم که در میان بحث از ضروریات خمس حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل اینا که بود یه مورد دیگه هم مورد متاخر حفظ مال اما این وسط یکی به آخر حفظ ارز و بعضی گفتن و بعضی ها حفظ نصب رو پس مفهومی که ما داریم در واقع یکی بحث مفهوم شناسی مفهوم نصب است یکی هم ارز برخی خلاصه مقاوله حفظ ارز رو محوریت محوریت داده و از زمغه ضروریات خمس تلقی کردند. برخی هم حفظ نسب و نسل رو خلاصه به جای مقوله حفظ ارز قرار دادند. خب پس ضروریات خمس شد در مجموع شش تا نسب و نفس حفظ نسب یا حفظ نسل در تحلیلی که میارن چی رو مد نظر قرار میدن این که خدمت شما عرض کنم احکامی برای حفظ حیات انسان نه به صورت فردی به صورت جمعی در نظر گرفته شده اما ارز یاد مفهومی است که جنبه اجتماعی داره و در واقع جای طرح اون در فقه المجتمع است مجتمع در تعبیر عربی یعنی همون جامعه میگن مجتمع فلان یعنی جامعه خب یا بگیم فقه اجتماع در فارسی اینجا ما باید بگیم که ارز چیه؟ یک مقوله است که از سنخ ماهیات مفهومی است که در واقع تکایت از بعد سانوی و بگیم بعد اعتباری و واقعی داره ترکیبی از خلاصه واقعی داره و جنبه اجتماعی داره در واقع این بود اعتباری به این صورته که ارز بر اساس منظومه یا مجموعه ای از اعتبارات انسانی یا دینی شکل میگیره. خب یه کسی میگی آبوش او رفت در فارسی خلاصه نه این حکایت از چی میکنه؟ یک جایگاهی فرد داره در واقع رعایت برخی از امور یک حیثیت سانوی برای افراد به دنبال داره و امکان بقا امکان ایجاد بقا یا زوال اون خلاصه هیسیت میتوانه مد نظر فقق قرار بگیره خب چه ربطی به بحث تضاهم داره در برخی از موارد سیانت از ارز و آیا آبرو حکمی در بقیه ضرورت فقهی داره ضرورت فقهی و وجود داره چنان که خلاصه از بین بردن برد... از بین بردن آب روی دیگران یا حتی آب روی خود حرمت داره حالا اون مقوله دیگه که بگیم آب وجود, به... وجود داره ای... ای... یا مثلا حرمت داره در برخی از موارد از بین بردن آبروی دیگران حرمت داره یه جایی حرمتی نداره قوم سر در برخی از موارد حرمت داره بنابراین این امر بر این اساس از این رو می توانیم در واقع می توانیم رعایت و آبرو را یکی از واجبات یا بگیم اه خلاصه اه یکی از واجبات شرعی است و می تواند طرف تضاحم وا ب شود که حرمت از بین بردن آبرو هم می تواند طرف تضاحم با واجبات یا محرمات دیگر قرار بگیره یه لحظه بخشید دوستان پس ما از یه طرف الان نکتش چیه؟ میخواییم ببینیم که اینجا زمینه برحال تزاهم هست یا نه تصویر تزاهم اینجا بر چه اساسی صورت میگیره؟ این که از یک طرف در واقع نفس که صحبتش رو کردیم در واقع سیانت از نفس می... امری در واقع وجوب شرعی داره از این رو میتوانه خلاصه طرف می توان طرف تزاهم قرار بگیره درسته از اون طرف خلاصه سیانت از ارض یا آبرو هم میتونه ضرورت فقهی داره ضرورت و وجوب فقهی داره همونطور که از بین بردن آبروی فرد دیگه یا یا از بین بردن خلاصه آبروی خود هم این هم همینطور، پس این هم حرمت داره. از این جهت می توانیم رأیت خلاصه ارض و آبرو رو یکی عنوان در واقع یکی از دو طرف تظاهرم خلاصه می توانیم شناسایی بکنیم. و این رو ما بپذیریم همونطور که حرمتش هم میتوانه چی بشه؟ میتوانه طرف تزاهان با دیگر موارد قرارگه یعنی هم سیانت از نفس محترمه وجوب شرعی داره و در واقع از اون طرفش هم اگر بگیم از بین بردن یا خدشه در خلاص نفس محترمه این هم حرمت داره یا این طرفی بگیم در هر دو صورت این مورد چه با لباس ما وجوب بگیریم چه با لباس حرمت این میتوانه طرف تزاهم قرار بگیره پس یک بحث مفهوم رو داریم خب مفهوم شناسی که روشن اجمالا می توانیم شما مفهوم ارز رو بیایید در اونجا بحثم بکنید خب این هم محل بحثه خب میرسیم به بحث ارز به بحث نسب یا نسل این هم یه مفهومیه که جای طرحش اینجا وجود داره که بعد ارز کنیم نفس اینجا حفظ نسب یا نست این احتدار چیه؟ این مفهوم حکایت از در واقع استمرار حیات انسان در اولاد و اه خلاصه اه از طریق زاد و ولد میکنه خب در واقع اینجا بحث از اینه که اگر یک امری ای این وجود این زمینه رو از بین ببره خب اینجا میتوانه بعد به نظر بحث ما قرار بگیره بنابراین این ای خلاصه نسب یه مفهومی داره که ما حالا اون معنای نسل مد نظر مونه در اینجا مفهوم تایف گرایانه طایف گرا... یعنی یا بگیم قومیت گرایانه از نسب مد نظر نیست بلکه چی مده نظره؟ این فقط به اون جنبه انتصاب مد نظره و استمرار حیات انسان به صورت مجموعی و از طریق زاد و ولد رو در نظر داره خب تزاهمش با چیه؟ هر واجبی ما الان یه سری احکام رو داریم شاره مقدس در نظر گرفته نتیجه چیه این که استمرار حیات انسان ها در قالب زندگی جمعی و ازدیاد در واقع استمرار بگیم نفوس و نسل ها مد نظر شارع متعال است و به عنوان وظیفه یا حقی انسانی برای افراد از طرف خداوند متعال لحاظ شده است از این رو جای تره خلاصه این جای تره بین حفظ نسب یا نسل با دیگر واجبات و محرمات وجود داره چونان که می توانیم صحبت از در واقع می توان صحبت از تضاحم چنین مسلحتی مصلحت اون با دیگر مساله رو مطرح کرد و پس جای طرح این وجود داره ما الان استمرار نسل مد نظر شاره است میخوایم می بگیم که این قضام داره پس هم میتونه به عنوان وظیفه یا حق انسانی همونطور که در واقع تصویر ارز و آبرو هم همینطور بود در واقع در این میان میتوان خلاصه سیانت از آبروی افراد رو حقی مشروع که معتبر برای اونها هم تلقی کرد در این صورت در واقع اگر ما بخواهیم صحبت از حق بکنیم تصویر تزاهم چگونه است؟ طرح تزاهم بین این حق با سایر حقوق یا تکالیف شرعی خلاصه مطرح خواهد شد یا ام... بگیم امکان امکان تر خواهد داشت ولی به چه صورت تضاهم بین این حق با سایر حقوق و تکالیف اگر گفتیم این حق صحبت از تضاهم بین چی خواهد بود با تکالیف یا حقوق دیگر اگر خلاصه واجب بدانیم وجوب سیانت از نفس محترم وجوب سیانت از خلاصه خرمت یا سیانت از آب رو و عرض رو بخواییم در نظر بگیریم در این صورت تضاهم بین حکم تکلیفی با دیگر تکالیف مطرح خواهد بود از اینجا تصویر تزاهن به این صورته که بین خلاصه یک حکم تکلیفی با دیگر تکالیف یا اگر حق گرفتیم تزاهن بین حق و تکلیفی یا حق و حق مطرح خواهد بود پس نوع تصویر هم مهمه همونطور که در واقع خلاصه مسلحت نفس هم همینطور بود به عنوان وظیفه یا به عنوان حق تضاهمش از این طریق خواهد بود خب تطبیقاتش هم که معلومه در حال وجه ترجیه هم که ما عرض کردیم تطبیقات سیاسی حکومتی خب این یه امر روشنیه اما مصادیق خاص خودش رو داره خب اینجا ما میتوانیم یه مقوله دیگه هم توی این مد نظر قرار بدیم اگر ببیشه در ارز میتوانیم مفهوم ارز یا آبرو را محدود به شخصیت های حقیقی و آهاد مکلفان در نظر نگرفت در واقع فراتر از فراتر از شخصیت‌های حقیقی و بگیم آهاد مکلفان ما بدانیم این صورت که در واقع افراد می توانند به عزون بر خلاصه اون شخصیت شخصیت حقوقی حقیقی خود از آبروی حقوقی در آبروی مربوط به شخصیت حقوقی خود هم برخوردار شوند بلکه میتوان بحث از آبروی شخصیت های حقوقی مانند نخاط نهادها و ساختار های اجتماعی سیاسی رو هم مطرح کرد چنان که در رأس اونها در رأس این شخصیت ها در واقع می توان از درباره بگیم درباره سیانت از آبروی نظام سیاسی هم نظام سیاسی یا جامعه خاص جامعه خاص اسلامی یا غیر اسلامی هم سخن گفت در مجموع مفهوم ارز میتوان ناظر به مواردز متعددی خلاصه مطرح شود به چه صورت؟ آب روی شخصیت یکایی یک افراد یکایی یک که افراد جامعه به عنوان اعضای حقیقی؟ اینها چی هستند؟ به عنوان اعضای حق به عنوان در واقع جدیدی ها میگن شهروند حالا ما مفهوم خاص خودشو بگیم به عنوان خلاصه عضوی از اعضای جامعه اسلامی بگیم در واقع به عنوان یک خلاصه آهاد مکلفان و زبل حقوق شرعی هر کدام از اینها خلاصه یه سیزی دارن آبروی دارن افراد جامعه اینا سر جای خودشون خب پس آبروی شخصیت حقیقی شخصیت حقیقی اینها سر جای خودشون دوم چی شد؟ آبروی اشخاص به لحاظ جایگاه حقوقی اونها توانند شخصیت حقوقی داشته باشن خب سر جای خودشون هم ارز آبروشون یکی دیگه چی؟ آبروی اشخاص خلاصه آبرو چون مفهوم شخصیت حقوقی عمه آبروی نهادها ها به عنوان شخصیت حقوقی یه موقع میگیم حکومت اسلامی پس ببین یه موقع میگیم فردی که به عنوان رئیس به عنوان به لحاظ جایگاه حقوقی اونها خب بنابراین ما موارد مختلف داریم پس ما وقتی که اینو در نظر بگیریم تضاغم یه موقع بین چیه موارد مختلفی می توان در سیانت از در دو طرف داشت یکی اشخاص جان اشخاص یکی از یه طرف آبرو می توانی موارد مختلفی می توان در سیانت از نفوس محترمه در نظر گرفت خب این موارد چیه یک شبیه همین پس یکی بحث سیانت از جان میگیم آقا جان در واقع سیانت از خلاصه جان افراد حقیقی ما این تطبیقات رو چه در نظر دومال چی هستیم میخوایم یه تطبیقات شخصی داره تضاهم در خلاصه تظاهوم در میان شخصی در واقع مسلحت نفس با مصلحت از اصل نسل به حسب تعدد بر اساس تعدد هر یکی از دو طرف تنوع پیدا کنه چنانکه مسادیق مختلفی میتونه در واقع در تظاهر در موادر عرصه سیاسی اجتماعی سیاسی حکومتی خلاصه پیدا کنه ما موارد رو محدود نمیگیریم خب در این میان موارد مختلفی از سیانت نفس محترمه داریم سیانت از جان انسانهای معمولی خب یک جایی هم چی سیانت از جان افراد صاحب صلاحیت یا برخوردار از مناسب بالای اجتماعی سیاسی اینم معقول است خب اینجا در عرصه اجتماعی سیاسی همه افراد به هر حال جایگاهی دارن افراد عادی دارن در درون درون یک نظام سیاسی خب یه جایی هم حالا موارد دیگه هم داریم انسان ج... جان انسان های معمولی که داشتیم در درون جامعه یه جامعه هست در درون یک جامعه اما در درون نظام سیاسی هم افراد صاد مناسب داریم یکسای هم میاییم در واقع سیادت از جان افراد مربوط حال افراد معمودی یا صاحب صلاحیت یا صاحب منصب از جوامع دیگر به عنوان میهمان یا به سفر هر هرچی وارد کشور ما شدن خب آیا ما یه نفری کافر اینجا سفیره برای سیانت از جان او آیا ما میتوانیم یک مسلمان رو بگماریم حفظ جان مسلمان ترجیح داره یا نم خب اینجا به هر حال میبینیم که افراد یه جایگاهی دارند حفظ جان یکایی که مسلمانان یا اهل ذمه چون در زمین ما هستن که بر فرض اهل ذمه بر شرایط ذمه واجب است. از این رو قلیه در حذف با دیگر امور باید حکم خلاصه این موارد معلوم شود از جمله یکی چی بود بین سیانت ارز و آبرو با جان چنان که خلاصه رعایت در حال ارز و آبرو اونها هست این پس یه طرف در واقع ما بگیم که یک طرف چی بود نه در واقع سیانت از دفعوز محترمه بود خب اینجا ما در, در طرف دوم هم داریم چنان که ما چی داریم شخصیت حقوقی هم گفتیم داریم سیانت از حال نفس به منه آمینجا بگیریم سیانت از در واقع بگیم نهادهای نظام به مسابه خلاصه جان نظام نفس جان یا نفس نظام این هم یه مقوله شبیه مشابه بگیریم آیا اینجا باید افراد کشته بشن آیا آبروشون بره کدام مقدمه خب پس این هم یه مقوله در طرف دوم در طرف خلاصه سیانت از ارز هم میتوان مسادیق متنوی از خلاصه این مورد رو پیدا کرد یکی از اون موارد چیه؟ شخصیت است در واقع سیانت از آبروی یکایی یک که افراد جامعه اسلامی خب حالا یه جایی البته غیر این هم هست اونجا شرطی که نفس محترمه باشه اینجا آب روی یک که افراد جامعه اسلامی یا اگر دایره رو وسیع بگیریم شامل بگیم افراد چی و افراد محترم و دیگر افراد محترم یعنی چی تو جامعه اسلامی نیست اما شخصیتش باید محترم شمرده بشه سیانت از آبروی مناسب در واقع اونجا آبروی شخصیت حقیقی هر یک از افراد بود اینجا سیانت از آبروی شخصیت حقوقی هر یک از صاحب منصبان یا اصولا صاحب خلاصه صلاحیت ممکنه هنوز اینو نداره جایگاه نداره ولی دوید خلاصه دوید جور شخصیت حقوقی داره اجمالا خلاصه صاحب منصبان والا مناصب حکومتی یا شخصیت دیگه سیانت از آبروی شخصیت حقوقی در واقع نهادها این سر جای خودش پس ما اگر تو زندگی در مجموع زندگی فردی بخوایم بحث رو مهدت بخشید کنیم با شخصیت حقیقی بیشتر ما سر و کار داریم اما اگر دایره بحث رو وسیع تر بگیریم می توانیم بحث رو خلاصه وارد حیده اجتماعی بکنیم و نتیجه دیگه به دست بیاریم بس پیچیده تر میشه خلاصه حالا اون زرافت های مقبوله اجتماعی هم جای خودش داره ما در واقع تضاقوم در تمام موارد میتواند ناظر به شخصیت‌های حقوقی حقیقی و حقوقی مختلف لحاظ شد از این رو خلاصه نمی‌توان دایره بحث رو به شخصیت‌های حقیقی افراد محدود کرد از یک جهت تضاهم بین یک البته ما بین آبروی شخص و آبروی شخصت حقیقی و حقوقی هم می توانیم داشته باشیم اون یه بحث دیگه است خب ما الان اینجا تضاهم بین نفس با چی داشتیم؟ مثلت ارز و آبروی داشتیم یا مثلت نفس با نسل شاید بهتر باشه اصلا تقدیم مثلت نسب, نسب یا نسل رو حتی جدا ما در نظر بگیریم خب پس اینجا تو این تطبیقات بحث پیشیده است خب ما الان میبینیم که جان یکی نفر باید حفظ بشه یا خلاصه آب رو از منظر دیگه هم میتوانیم این تضاهم رو تطبیقات در واقع سیاسیه این سیاسی حکومتی یا حتی سیاسی اجتماعی بگیم سیاسی حکومتی تضاهم مزبور رو هم در نظر بگیم به این صورت ای که آبروی دو فرد جان مقاصد داریان یا تضاهم یک فرد با آبروی خودش خب تضاهم بین جان و آبرو میتوانه در لحاظ تعدد افراد تعدد یا وحدت افراد هم مد نظر قرار بگیره به این صورت که تضاحم حفظ جان یک نفر با حفظ آبروی آن فرد خب یک مورد تضاحم حفظ جان یک نفر با حفظ آب روی فرد یا افراد دیگر تضاهم حفظ جان یک نفر یا بگیم قلاصه یک یا چند نفر با حفظ آبروی فرد یا افراد دیگر دوباره همینجا تضاهم حفظ جان یک یا بگیم جان و خلاصه جان و آبروی افراد به صورت خلاصه متعدد افراد به صورت بگیم متقابل این هم فرضیه به هر حال می توانیم ببیجه اگر اگر شخصیت حقوقی افراد یا نهادها نیز به این موارد میتوانه خلاصه افزوده بشه در واقع لحاظ شخصیت حقوقی افراد به این موارد میتوانه افزوده بشه در نتیجه تضاهمه بین خلاصه حفظ جان اونها با قابل روی بگیم شخصی یا شخصی یا حقوقی اونها خلاصه این اهمیت خاص خود رو داره و در واقع می توانه ذریبه بحث رو بیشتر بکنه عل ما اینو محدود کردیم با هم در نظر گرفتشه تظهمم بین حفظ جانون ها با آب روی جان با آب روی افراد شغوق خلاصه مختلفی داره که ما به صورت اجمالی در نظر گرفتیم می در صورت های مختلفی باشه. با نگاه اجمالی ما اینها رو به حال جان یک نفر آبروی یک نفر یا آبروی چند فرد آبروی شخصی یا حقوقی خلاصه اونها رو در نظر بگیریم خب این هم پس مد نظر ماست حالا اگر بحث نسب رو ما لحاظ بکنیم اون یه بحث خواستری میشه حفظ نسل اینجا ما حفظ نسل رو حفظ نسل در فضای در مباحث مربوط به فقه جمعیت اهمیت کلیدی داره خب چنان که تزاهم خلاصه محدودسازی نسل محدودسازی نسل، انقطاع نسل، با دیگر حقوق و تکالیف شرعی جای تعامل داره. خب این هم یه است که در واقع یه بخشش به حفظ جان هم میتونه برگرده. الحمدلله رب العالمین.